خندید چون دیدش اسفندیار به دو گفت که ای رستم نامدار چرا گم شد آن نیروی پیل است ز پیکان چرا پیل جنگی بخست کجا رفت آن مردی و گرزتو بر ازمن در اون فر و برزتو گریزان به بالا چرا بر شدی تو آواز شیر ژیان بشنودی چرا پیل جنگی تو روباه باه گاش میزنه بهش چرا پیل جنگی چو روباه گشت ز رزمت چنین دست کوتاه گشت تا آنی که دیو از تو گریان شدی داد از تفتیق تو بریان شدی زواره پی رخش ناگه بدید که از آن رود با خستگی در کشید سیه شد جهان پیش چشمش به رنگ خروشان همی تاخت تا جای جنگ زواره برادر رستم دید که رخش تنها و بی سوار داره میاد بسیار ناراحت شد دنیا به چشمش سیاه شد برای اینکه فکر کرد رستم کشته شده آمد خودش رسون به جنگگاه تن مرد جنگی چنان خسته دید همه خستگیهاش نابسته دید خسته به معنی زخمیه این که ما الان خسته رو معنی فرسوده به کار میبریم در حقیقت درست نیست الان در افغانستان در مقابل این لفظ که ما به کار میبریم میگیم خسته شدی اونا میکرد مانده شدی و خسته به معنی مجروهه همین که ما بهش میگیم زخمی و اینجا فردوسی لغت و معنی درستش به کار میبره وقتی که میگه تن مرد جنگی خسته بود یعنی زخمی بود تن مرد جنگی چنان خسته دید همه خستگیهاش نابسته دید به گفت یعنی زواره به رستم گفت بدو گفت خیز اسپ من برنشین که پوشت تو خفتان کین بدو گفت رو پیش دستان بگوی که از این دوده سام شد رنگ و بوی زواره میگه اصپ من سوار شد بیا بالا میگه تو هم برو پیش دستان یعنی پیش زال و بگو خونواده سام رنگ و بوی خودشون از دست دادن نگه کن که تا چاره کار چیست بر این خستگی ها بر آزار کیست؟ که گر من ز پیکان اسفندیار شبی را سر آرم روزگار چنان دانم ایزال که امروز من ز مادر بزادم بر این انجمن میگه برو بهش بگو که اگر من امشب رو با این های تیر اسفندیار به صبح برسونم به نظرم میاد که تازه از مادر زایده شدم یعنی چی؟ یعنی جان من دیگه رفته من تیر کاری خوردم و گمان نمی کنم تا فردا زنده بمونم اگر تا فردا زنده بمونم مثل اینه که عمر دوباره یافتم. بسیار رستم ناراحت چرا رفتی همین چاره رخش ساز من آیم کنون گر بمانم دراز میگه وقتی رفتی برو رخش رو بده چاره بکنن زخمان شو ببندن منم اگه نمردم میام زوارز پیش برادر برفت و دیده سوی رخش به تفت به پستی همی بود اسفندیار خروشید که رستم نام دار به بالا چنین چند باشی به پای که خواهد بودن مر تو را رهنمای کمان بفکن از دست و ببر بیان براهنج و بگ شایتی قزمیان، پشیمان شو و دست را ده به بند، که از این پس نیابی تو از من گزند بدین خستگی نزد شاهت برم ذکردارها بی گناهت برم وگر جنگ جویی تو اندرز کن یکی را نگهبان این مرز کن میگه اگه میخوای جنگ بکنی اندرز کن یعنی تو بکن هر سفارشی داری به کسانت بکن مرادش اینه که اگر تسلیم نشی و بخوای بازم جنگ کنی دیگه جان سالم به در نخواهی برد بگر جنگجویی جویی تو اندرز کن یکی را نگهبان این مرز کن گناهی که کردی یزدان بخواه گناه ها از یزدان بخواه یعنی آمرزش گناه رو از یزدان بخواه گناهی که کردی زیزدان بخواه سزد به پوزش ببخشد گناه رستم؟ میگه حالا وقت گذشته دیگه وقت جنگ نیست و فردا چشم اگه فردا رسیدم هرچی تو بگی همون کار میکنم چنین گفرستم که بیگاه شد زر از مزه دست کوتاه شد شبه تیره هرگز که جویت نبرد تو اکنون بدین رامشی بازگرد من اکنون چنین سوی ایوان شوم، بیاسایم و یک زمان بغنوم ببندم همه خستگی های خیش به کسی را که دارم به پیش زواره فرامرز و دستان سام کسی خیشان که دارند نام به سازم کنون هرچه فرمان توست همه راستی زیر پیمان توست اسفندیار که میدونه حالا رستم داره میره ولی مرد تجربه آموخته است بازم نگران میشه که تو داری میری باز یه چاره ای باز فریبی بازی یه تدبیری نکنی، بدو گفت رو این تن اسفندیار که ای برمنش پیر ناسازگار تو مردی بزرگی و زورآزمای بسی چاره دانی و نیرنگ و رای بدیدم همه فر به تو را نخواهم که بینم به تو را به جان امشبی دادمت زینهار به ایوان رسی کام کجی مخار میگه دنبال کج رفتن اینا نری رسیدی به کاخت سخن هرچه چه پذرفتی آن را بکن از این پس ما پیمای ما من سخون بدو گفت رستم که ایدون کنم گفت چشم چو بر خستگی ها بر افسون کنم چو برگشت از رستم اسفندیار نگه کرد تا چون رود نامدار باز وقت که رستم پشت میکنه و میره اسفندیار نمیتونه از تحسین او خودداری کنه چو برگشت از رستم اسفندیار نگه کرد تا چون رود نامدار چو بگذشت مانند کشتی برود، رود همی داد تن از دان درود همی گفت که داور داد و پاک گر از خستگی ها و من حلاک که خواهد گردن کشان کین من که گیرد دل و راه و آین من چو اسفندیار از پسش بنگرید آن روی رودش به خشکی بدید همی گفت کین را مخانید مرد یکی ژنده پیل است با دار و برد گذر کرد پرخستگی ها براب از آن زخم پیکان شده پرشتاب شگفتی بمانده بود اسفندیار همی گفت که داور کردگار چنان آفریدی که خود خواستی زمین و زمان را بیاراست. اسفندیار برمی بدان گه که شد نامور باز جای پشوتن بی آمد ز پرد سرای ز نوشازر گرد و از مهرنوش خروشیدنی بود با درد و جوش اینجا مفصلا سوگواری برای نوشازر و مهرنوشه بعد اینا رو در تابوت میکنند. یک کمی لای چشم اسفندیار باز شده اما نه چندان که حاضر بشه از جنگ رستم طرف نظر کنه میگه وقتی بچه کفن کردن فرستاد به ایران به تابوت زرین و در مهد ساج فرستادشان زی خداوند تاج پیامی فرستاد نزد پدر که آن شاخ رای تو آمد ببر اون شاخه نظری که تو داده بودی و کاری که کرده بودی میوه داد بفرمایید. میوهش از بین رفتن این بچه هاست چو تابوت نوش و مهر نوش ببینی تو در آز چندین مکوش اینا رو ببین انقدر دنبال هرس نرو اما خودش بازم همون راه خودش رو ادامه میده به چرمندر از گاوه اسفندیار ندانم چرانت به دور روزگار میگه گاوه اسفندیار هنوز تو پوست خودشه مقصود این است که هنوز اسفندیار سرپاست اما سرنوشت منم معلوم نیست یعنی فردا ممکنه که گاوه اسفندیار از تو پوسش بکشم بیرون به چرمندر از گاوه اسفندیار ندانم چرا راند به دو روزگار نشست از بر تخت با سوگ و درد سخنهای رستم همه یاد کرد چنین گفت پس با پشوتن که شیر بپیشد از چنگال مرد دلیر پروستم نگه کردم امروز من بران آن ورز بالا یا آن پیلتن ستایش گرفتم به یزدان پاک کز است امید و زو بیم و باک که پروردگار آن چنان آفرید بر آن آفرین کو جهان آفرید چنین کارها رفت بر دست او که دریای چین بود تا شست او همی برکشیدی ز دریان هنگ بدم دم درکشیدی زهامون پلنگ برانسان بخستم تنش را به تیر که از خون او خاک شد آبگیر زه بالا پیاده به پیمان برفت سوی رود با گبر و شمشیر تفت برآمد چنان خستزان آبگیر سراسر تنش پرز پیکان تیر برانم که چون او به ایوان رسد روانش زه ایوان به کیوان رسد میگه به قدری زخمی و ناراحت بود که من فکر میکنم که اگر برسه به کاخ خودش دیگه زنده نمونه و روانش بره به آسمان اما رستم از اون طرف میاد با اون خستگی با اون زخم و با اون ناراحتی همه ناراحت میشن دیگه و از آن روی رستم به ایوان رسید مرورا بران گونه دستان بدید زواره فرامرز گریان شدند. از آن خستگیهاش بریان شدند. ز سربر همی کند رودابه موی بر آواز ایشان همی خست روی زواره به زودی گشادش میان از او برکشیدند ببر بیان هران کس که دانا بود از کشورش نشستند یکسر همه بردرش بفرمود تا رخش را پیش اوی ببردند و هرکس که بود چار جوی گران مای دستان همی کند موی بران خستگی ها بمالید روی همی گفت من زنده با پیرسر بدیدم به دینسان گرامی پسر رستم میگه نه ناراحت نباش کار دشوارتر دنبال اینه به دو گفت رستم که از این غم چه سود که این زاسمان بودنی کار بود به پیش از کاری که دشوارتر و زور او جان من پرزه تیمارتر که هرچند من بیش پوزش کنم که این شیر دل را فروزش کنم نجوید همی جز همه ناخوشی به گفتار و کردار و گردنکشی کشی رسیدم زهر سو به گرد جهان خبر یافتم زاشکار و نهان گرفتم کمربند دیو سفید زدم بر زمین همچو یک شاخ بید نتابم همی سرز اسفندیار از آن زور و آن بخشش کارزار خدنگم ز سندان گذری یافتی زبون داشتی گر سپریافتی زدم چند بر گبر اسفندیار گراینده دست مرا داشت خار همان تیغ من گر بدیدی پلنگ نهان داشتی خیشتن زیر سنگ نبرت همی جوشنند در برش نان پاره پرنیان بر سرش سپاسم دو یزدان که شب تیره شد در آن تیرگی چشم او خیره شد برستم من از چنگ آن ها، ندانم که از این خسته آیم رها ها. چندیشم، اکنون جزین نیست رای که فردا بگردانم از رخ. پای به جای شوم کو نیابت نشان به زابلستان گر کند سرفشان سرانجام از آن کار سیر آیدو. اگرچه اگر چه زباد سیر دیر آیدو. بدو گفت زال ای پسر گوش دار سخن چون به یادآوری هوشدار دار همه کارهای جهان را در است مگر مرگ کان را دری دیگر است یکی چاره دانم من این را گزین که سیمرغ را یار خانم برین گرو باشدم زین سخن رهنمای بماند به ما کشور و بوم و جای بعد از این که رستم میگه من که هیچ کاری نتونستم بکنم نه شمشیرم بر زره اسفندیار کار کرد نه تیرم کار کرد این زخم هایی که خوردم نمیدونم که ازش رها میشم یا نه فکر کردم که فردا برم یه جایی که من گیر نیاره بعد یه مقداری بالاخره مردم میکشه اینجا سیر میشه دیگه از این کشتن اگرچه خیلی دیر از کشتن سیر میشه ولی بالاخره میذاره میره دیگه زال میگه نه آقا جون. عواظت جمع باشه و گوش کن جز مرگ که علاج نداره و هیچ جور چاره او رو نمیشه که باقی کارهای دنیا چاره داره همه کارهای جهان را در است یعنی راه داره مگر مرگ که را دری دیگر است میگه به نظرم میاد که برای این کار از سی یاری بخواهیم و همین کارم میکنه در شاهنامه حکیم توس، سه مورد هست که سیمرغ دخالت میکنه مورد اول در داستان زاده شدن زال است در دوره زندگی سام که میدونیم گفتند سام بچه آورد که موهای سرش سفید بود او رو انداخت بیرون و سیمرغ او رو برد و بزرگ کرد و آورد و به این ترتیب رابطه بین زال و سیمرغ برقرار شد که داستانش فعلا مورد بحث ما نیست اینجا در داستان رستم و اسفندیارم یه بار اسفندیار اشاره به این میکنه که سام بچه‌شو برد انداخت دور و بعد سیمرغ پرداشت برداشت برد و با اینکه بود نبود رقبت نکرد به خوردنشو اینا رو قبلا گفتیم مورد دوم در داستان هفت خان اسفندیاره یکی از خانهایی که اسفندیار برای رفتن به رویندش باید از او بگذره سی که با دوتا بچهش تر این راه خطر بزرگی به شما میرن اسفندیار دستور میده ای بسازند و چندتا اسب به او ببندن و یه صندوقی که روی دیوارش و روی سقفش نیزه ها و حربه ها و تیغه ها نشوندن. و خود اسفندیار میره در اون صندوق مینشینه سیمر آمد که به این گردونه حمله بکنه وقتی که خودش رو میزنه به این گردونه اون شمشیرها و تیغه هایی که در گردونه نشونده بودن او رو زخمی میکنه زیاد به طوری که از قوت میافته و وقتی سست میشه و اسفندیار حس میکنه که قوتش نقصان پذیرفته میاد بیرون استاد توس میفرمد با شمشیر مرغ چارهگر رو بیچاره کرد و از بین برد دو تا بچه سیمرغ هم دنبال او بودن و وقتی که دیدن مادرشون به این ترتیب تباه شد و از بین رفت اونا میترسن و برمیگردن میرن پیکارشون طبیعی است که وقتی سیمرغ با بچش میاد این سیمرغ ماده است که اینجا به دست اسفندیار تباه میشه. این مورد دومه و این در داستان است که قبل از داستان رستم و اسفندیار اتفاق میافته بار سوم در اینجاست که زال میخواد از سیمرغ کمک بخواد بنده اینجا بلافاصله فاصله میکنم وقتی سی مرگ میاد یکی از مسائلی که به رستم میگوید میگوید که تو چرا با اسفندیار جنگ کردی. میگه آخرین میخواد دست من به و این ننگ بزرگیسینا، میگه نه بند اسفندیار ننگ نداره، او کسی که نظیرش پیدا نشده و تو اصلا بی خود این کار کردی. حالا کردی. بعد برای دلیل آوردن برای این کار که نه دست دادن به بند اسفندیار موجب ننگ نیست میگه اسفندیار کسی است که جفت من رو با اون فر و اون قدرتی که داشت کشت و با او مقابله کرد و از بین برد کسی که بتونه به سیمر پیروز بشه دست دادن به بندش ننگین نیست. اما خب قضا آمده بوده و حوادث به صورتی جریان پیدا میکرده که ناگزیر باید به مرگ اسفندیار منتهی بشه و اینجا صحنه است که قرار است زال از سیمرغ برای فرزندش و برای رخش که به شدت زخمی شدن هر دو کمک بخواد ببودند هر دو بر آن رایمند سپهبد برآمد به بالا بلند اینجا مراد از سپهبد زال البته از ایوان سه مجمر پر آتش ببرد برفتند با او سه هوشیار و گرد فسونگر چو بر تیغ بالا رسید ز دیبا یکی پر بیرون کشید ز مجمر یکی آتشی برفروخت به بالای آن پر لختی بسود چو پاسی از آن تیر شب درگذشت تو گفتی چو آهند سیاه ابر گشت همانگه چو مرغ از هوا بنگرید درخشیدن آتش تیز دید نشسته برش زال با درد و غم ز پرواز مرغنده آمد دوژم. جام پیش با اود اود اون چوب خوشبوئه که میسوزونن که بوی خوش بده برای اینکه سیمرغ هم جنبه ماورای طبیعی داشته و این اتریات و اینا رو که مصرف میکردن برای همین کارهای ماورای طبیعی است میگه زال با اودی که میسوخته و دود میکرده و بوی خوش میداده میره به استقبال سیمرغ بشود پیش با اود زال از فراز تو تودش فراوان و بردش نماز به پیشش سم پر از بوی کرد بوی باز اینجا بوی خوشی دیگه به پیشش سمجمر پر از بوی کرد زخون جگر بر درخ جوی کرد به دو گفت سیمرغ شاها چه بود که آمد از اینسان نیازت به دود چنین گفت که این بد به دشمن رساد که بر من رسید از بد بد نجات تن رستم شیردل خسته شد عرض کردم قبلا که خسته به معنی زخمی است تن رستم شیر دل خسته شد از آن خستگی جان من بسته شد که از آن خستگی بیم جان است و بست بر آن گونه خسته ندیده است کس یعنی به شدت زخمی است اسفندیار هم پیش خودش فکر کرده بود که مشکل رستن بتونه با این زخم خودشو به بالای کوه برسونه تا چه برسه که شب رو روز کنه و روز برگرده میدان جنگ همان رخش گویی که بیجان شده است ز پیکان تنش زار و پیچان شده است بی آمد بر این کشور اسفندیار نکوبت همی جز در کارزار نجوید همی کشور و تاج و تخت بر و بار خواهد همی بادرخت میگه با گوهر و دینار و گنج و کشور و تاج و تخت و اینا کاری نداره ریشه ما رو میخواد بکنه این برابار با درخت رو میخواد مرادش از درخت سلسله پهلوانی سیستان و پهلوانی ایرانیان است میگه ما رو میخواد ریشه کم بکنه بدو گفت سیمور که پهلوان ما باشند در این کار روان. روان. گر نمایی به من رخش را همون سرفراز جهان را یعنی رستم کسی سوی رستم فرستاد زال که لختی به چاره برافراز یال یال به معنی گردنه معمولا ما موی روی گردن است و روی گردن شیر رو میگیم یال ولی یال به معنی گردن اون مور هم که میگن یال به مناسبت این که روی گردن رویده برافراز یال یعنی بلند شو و برای چاره بیه اینجا بفرمای تا رخش را همچنان بیارند پیش منند در زمان بر بران تند بالا رسید همان مرغ روشندل او را بدید بدو گفت که جند پیگل بلند زد دست که گشتی به نژند نجند چرا رزم جستیز اسفندیار چرا آتش افکندی در کنار بدو گفت زال ای خداوند مهر چو اکنون نمودی به ما پاک چهر گریدون که رستم نگردد درست کجا خواهمن در جهان جای جست همه سیستان پاک ویران کنند، به کام دلیران ایران کنند، شود کنده این تخمه مازه بون کنون برچه رانیم یک سر سخون نگه کرد آن خستگی به در او راه پیوستگی یعنی معاینه کرد رستم رو و راه مالجش رو پیدا کرد از او چهار پیکان به بیرون کشید به منقار از آن خستگی خون کشید بران خستگی ها به مالی پر همان در زمان گشت با فر به دو گفت که این خستگی ها ببند همی باش یک چند دور از گزند یک چند به نظر ما میاد که مثلا برو یه هفته بخواب تا خوب بشه ولی خیر فقط چند لحظه مدت کوتاهی آسوده باش این درست میشه به دو گفت که این خستگی ها ببند همی باش یک چند دور از گزند یکی پر من تر بگردان گردان به شیر به مالندران خستگی های تیر بران هم نشان رخش را پیش خواست فرو کرد منگار بر دست راست برون کرد پیکان شش از گردنش نبود خسته گر بسته جایی تنش یعنی جای دیگرش خسته و بسته نبود پیکانار که کشید رخش راحت شد همانگه خروشی بلاود رخش بخندید شادان دل تاج برش به دو گفت مرغ گوه پیلتن تو اینام بردار هر انجمن چرا رزم جستیز اسفندیار که او هست روین تن و نامدار رستم میگه دست من میخواد بند کنه من از این ناراحتم و ایلیت قاهش دیگری نداشته که نپذیرم این بوده که نمیتونستم بپذیرم بدو گفت رستم گر او رازه بند نبودی دل من نگشتی نجند مرا کشتن آسانتر آوید زننگ وگر بازمانم به جاویز جنگ چنین داد پاسخ که از اسفندیار اگر سر به آوری نیست آر میگه ای در مقابل اسفندیار تسلیم بشی این ننگی نیست که اندر زمانه چنوی نخواست به دو ایران همی پشت راست به پرهیزی از وی نباشد شگفت مرا از خود اندازه باید گرفت که آن جفت من مرق با به دستان و شمشیر کردش تباه اگر با من اکنون تو پیمان کنی سر از جنگ جستن پشیمان کنی نجوی فزونی به استندیار گه کوشش و جستن کارزار وریدون که او را بیامد زمان یعنی عجل نه اندیشی از توزش بیگمان پسان گه یکی چاره سازم تو را به خورشید سر بر فرازم تو را میگه اگر با من عهد ببندی که هیچ جور تو ابتدا به جنگ نکنی هرقدر میشه معذرت اینا بخوای. از اسفندیار فزونی نجویی در جنگ جستن هرچه التماس در بکنی اگر اون وقت اسفندیار عجلش رسیده باشه دیگه باید بیپروا دست به کار بشی اگر عهد میکنی با من من ترتیب این کارو میدم در زمین در بیت های بعدی خواهیم دید که سیمار و رستم میگوید که به هر حال کشتن اسفندیار شومه در این گیتی شور وقتی داره در اون دنیا هم معذب بعد هم به زودی کشته میشه ولی کار رستم از این حرف گذشته بوده